عزیزان به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. برای ما باعث خوشوقتیه که شما در این دور از بررسی کلام مقدس خدا کتاب مقدس با ما همراه هستید. و اکنون ما یکی از عمیق ترین کتاب مقدس رو با هم مطالعه می کنیم. بله، رساله پولس رسول به رومیان. در این رساله، مطالب بسیار زیادی برای یادگیری وجود داره و نکات زیادی که خدا می‌خواد. اونها رو برای ما آشکار کنه. ولی چرا؟ چرا این نکات اینقدر اینقدرهای زهمیته؟ در درس امروز نگاهی اجمالی مندازیم به اینکه چرا این مطالب برای زندگی من، شما و کلیسا اینقدر مهمه. حالا با هم به درس امروز معلممون گوش میکنیم. در پایان جلسه قبل قسمتی از مهمترین آیاتی که پولوس رسول به اونها اشاره کرده و اهمیتش در کل کتاب مقدس رو مورد توجه قرار دادیم. پولس پس از گفتن این حقایق جرف با ذهنی الهام یافته و در این حال منطقی به فصل اول رجوع می کنه. فصلی که در اون حقایق جامعی از انجیل رو بیان کرده و اینطور طور می نویسه. که چه جرف است دولت و حکمت و علم خدا تقدیرهای او کاوش ناپذیر است و راههایش هایش درک زیرا کیست که از فکر خداوند آگاه بوده و یا مشاور او بوده باشد و چه کسی تا کنون چیزی به خدا بخشیده که بخواهد از او عوض بگیرد زیرا همه چیز از او و به واسطه او و برای اوست او را تا ابد جلال باد آمین پس ای برادران در پرتو رحمتهای خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است و دیگر شکل این اصر مشوید بلکه با نوشدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص خاست خدا خواهید بود. خاست نیکو پسندیده و کامل او. میخوام یه بار دیگه توجهتون رو به نکته های مهم رساله رومیان جلب کنم. همونطور که چند بار گفتم این رساله شاهکار الهیاتی پولس رسوله و حتی شاید بتونیم بگیم که شاهکار الهیاتی کل کتاب مقدسه این کتاب یک استدلال عظیمه این استدلال که در این رساله بزرگ دیده میشه از ابتدا تا آخرش توسط یک الهام اقلانی نوشته شده رساله رومیان از اون دسته نوشته هاست که خوندن اون مخصوصاً به وکلا تجویز میشه اگه شما وکلایی رو میشناسید میتونید از طریق درمیون گذاشتن این رساله با این افراد اونها را به چیزهای معنوی علاقمند کنید. خوندن این رساله به این دلیل به وکلا توصیه میشه که به روشی که خیلی از وکلا دیشن و پرونده های حقوقیشون رو آماده میکنن نوشته شده. در این رساله یک استدلال منطقی از ابتدا تا به انتها وجود دارد از شما درخواست میکن به عنوان یک تکلیف از ابتدا تا انتهای این رساله رو بدون هیچ ای بخونید و تلاش کنید که این استدلال رو دریافت کنید. تلاش کنید خلاصه ای از این استدلال کلام بزرگ پولس رو بنویسید. اگه شما در صدد پیدا کردن این استدلال در رساله رومیان هستید، دوست دارم در رابطه با این استدلال پولس رسول به شما خواندن چند آیه رو پیشنهاد بدم که ما به اونها میگیم پیوند. در اغلب مواقع پیون مستلزم وجود کلمه پس چون میباشد اولین پیوند در آیات یک و دو باب پنجم بیان میشه جایی که پولس میگه پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم میان ما و خدا به واسطه خداوندمان عیسی مسیح صلح برقرار شده است ما توسط او و از راه ایمان به فیزی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر میکنیم این پیوند در استدلال پولس نهفته است. در اولین آیه باب پنجم پولس مبحث چهار باب اول رو خلاصه میکنه. وقتی پولس میگه پس چون، او خطی میکشه و به سمت نتیجه میره. پولس میگه پس چون از راه ایمان پارسا مرده شدیم، میان ما و خدا به واسطه خداوندمون عیسی مسیح صلح برقرار شده. این خلاصه ای از چهار باب اوله و بعد از اون آیه دوم باب پنج معرفی چاربا به بعدی بحث پولوس رسول در نامه خودشه ما توسط او و از راه ایمان به فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می کنیم این پیوند دومین قسمت رساله رومیان رو به ما معرفی می کنه آیات پنج تا 8 جایی که او به ما در مورد چهار پادشاهی می گه پادشاهی گناه، پادشاهی مرگ، پادشاهی ایسا و پادشاهی شما پیام این قسمت اینه. اِثو برنده است و شما هم میتونید برنده باشید. این پیام قسمت دوم رساله رومیانه. چطور یک انسان موجه و درست میتونه به عنوان شخصی پارسا زندگی کنه، خب؟ چون این فردی مثل شخصی شناخته شده و صالح درست زندگی میکنه. این فرد برای آنچه که در این دنیای گناهالود درست و حقیقت ایستادگی میکنه، اما چطور این فرد میتونه در چنین دنیای گناهالودی برای حقیقت ایستادگی کنه؟ پاسخینه که چون این فردی برای این کار می بایست در مورد چهار پادشاهی که به اونها اشاره کردیم اطلاع داشته باشه. این قسمت با یک پیوند دیگه به پایان میرسه. در پایان باب هفتم و در ابتدای باب هشتم به یک پیوند مهم دیگه در استدلال پولس در این رساله شگفتانگیز بر می خوریم. در پایان باب هفتم و در ابتدای باب هشتم پولس درباره این چهار قانون الهی صحبت میکنه. قانون خدا یا کلام خدا که در قانون دیگری در اعضای ما آشکار می شود. قانون گناه و مرگ یا عواقب گناه. وقتی پولس به باب هشتم وارد میشه، خبر خوشی در مورد سومین قانون الهی به ما میده. قانون روح زندگی در مسیح که ما را از قانون گناه و مرگ آزاد میکنه. خبر خوش در این قسمت اینه که ما میتونیم اون رو تحت عنوان قسمت مقدس این رساله بخونیم به این خاطر که پولس به ما میگه که چگونه میتونیم در پی عیسای مسیح زندگی کنیم تمام این نکات در باب هشتم زمانی که پولس در مورد قانون طرز فکر به ما میگه خیلی کاربردی میشن ذهنی که بر اساس فکرای جسمانی شکل گرفته باشه تنها کارهایی رو انجام میده که نفس میگه ولی ذهنی که بر اساس روح القدس شکل گرفته باشه میتونه سمرات روح القدس را رو به دنبال داشته باشه. چهار قانون روحانی، قانون طرز فکر، قوانین بسیار کاربردی هستند. این قوانین میتونن فرق بین ایستادن برای خدا و زندگی سرشار از ستایش خدا رو با افتادن و زندگی غیر از پرستش خدا به ما نشون بدن. پیوند دیگه این رساله جایی هست که ما این جلسه رو شروع کردیم. بعد از اینکه در چهار باب اول به ما گفته شد که خدا چیه؟ خواست خدا چیه خدا چی رو محکوم میکنه خدا چه چیزهایی رو میدونه خدا چطور عمل میکنه و خدا از ما میخواد که چیکار کنیم و بعد از اینکه خبر خوش نجات به زیبایی در چهار با اول گفته شد و بعد از اینکه به ما گفته شد که چطور میتونیم زندگی همراه با پارسایی داشته باشیم پولس به ما در مورد اسرائیل میگه و اینکه نقشه خدا برای کمال مطلوب سرنوشت انسان حول اسرائیل می چرخه. بعد از اون پولس در مورد چیزهای عمیقی در بابهای 9 الی صحبت میکنه. او در مورد انتخاب صحبت میکنه. او در مورد دو صحبت میکنه، زمانی که در رحم مادرشون بودند، ایسو و یعقوب درون رحم ربکا، زمانی که هیچ کدوم از اونها نه کار خوبی کرده بودند و نه کار بدی، ولی خدا گفت نه از راه اعمال، بلکه به واسطه او که انسان را فرامیخواند، به ربکا گفته شد که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد کرد چنانکه نوشته شده است یعقوب را دوست داشتم اما از ایسو بیزار بودم خدا برای دو قلوهای متولد نشده نقشه و سرنوشتی در نظر گرفته حالا این الهیات سنگینیه و برای بعضی از ما خیلی سخته که بخوایم اون را قبول کنیم ما احساس میکنیم که خدا موظف قبل از انجام کارش اون رو با ما در میون بذاره و نظر ما رو بخواد چون عادلانه نیست وقتی پولوس به پایان این بخش نبوتی میرسه عادل شمرده شدگی رو نه به شخص گناهکار و یا نجات یافته بلکه به تمام دنیا و اسرائیل منتسب میکنه بعد از اون پولوس این چیزهای عمیق رو با ما در میون میذاره او این قسمت رو با نجات خاتمه میده وح که چه ژرف از دولت و حکمت و علم خدا تقدیرهای او کاوش ناپذیر است و راههایش درک شدنی زیرا کیس که از فکر خداوند آگاه بوده و یا مشاور او بوده باشد. چه کسی تا کنون چیزی به خدا بخشیده که بخواهد از او عوض بگیره؟ زیرا همه چیز از او و به واسطه او و برای اوست. او را تا عبد جلال باد. آمین. در اینجا پولس راه بسیار نزدیکی رو در این قسمت رسالش قرار میده که ما بهش قسمت تعلیماتی میگیم. رساله پولس شامل این قسمت هاست. قسمت تعلیماتی، قسمت عملی، قسمت آموزشی و قسمت کاربردی که فقط مختص خودش هست. این عظیمترین قسمت تعلیماتی پولس محسوب میشه. هیچ کدام از تعلیمات رسالات وی به اندازه این رساله جامع و عظیم نیست. پولس این عبارت تعلیمی رومیان یک تا یازده رو این گونه به پایان میبره که توجه خواننده رو به این حقیقت جلب میکنه که حکمت و معرفت خدا بی انتها هستند پولس قسمت آموزشی رساله رو با یک پرستش زیبا به پایان میبره. با این پرستش او میخواد به ما بفهمونه که خدا به هیچ کدام از ما به عنوان یه مشاور و در تصمیم گیری و یا برای کارهایی که میخواد انجام بده نیازی نداره اگه شما تمام این راه رو دوباره برگردین و به باب اول برین متوجه خواهین شد که پولس چه نکات ای رو با ما در میون گذاشته پولس از نقشه حقانیت، تقدس و نقشه خدا برای تمامی سرنوشت بشر سخن میگه و نقشه خدا برای تمامی سرنوشت بشر صحبت میکنه پولس تمام اینها رو در یک بسته برای ما خلاصه کرده و میگه گوش کنید در خدای بینهایت دانای ما تفکر کنید خدا از هیچ کدوم از ما مشاوره ای نمیخوا. خدا مجبور به انجام کاری در قبال ما نیست خدا موظف نیست کسی رو نجات بده. خدا هیچ چیزی به کسی بده کار نیست. با این تصور غلط که شما چی فکر می کنید به حضور خدا نرید. خدا نیاز نداره که به نزد شما بیاد و تا بفهمه که ادالت چیه. شما نیاز دارید که به حضور خدا بدید و بفهمید ادالت چیه. به این خاطر که خدا عادل، خداوند بسیار صادق و یک استاندارد جامع برای ادالت و عادل بودنه. وقتی پولس درباره این نکات در باحات 9 تا یازده صحبت میکنه کنه، منو یاد پرواز کردن می دازه. اگه خلبان فقط یه ذره در کابین خلبان رو باز بذاره، شما میتونید تمام دکمه ها سویچ ها و اهرمی که باش هواپیما رو هدایت می کنن ببینید. خیلی جادویی به نظر میاد. به خاطر خودم و تمام مسافران هواپیما واقعا خوشحالم که لازم نیست من این کنترل ها رو بدونم. من تنها مسافر اون هواپیما هستم. من میتونم روی سندلیم بشینم و پرواز کنم در حالی که من دلم غرصه و مطمئنم که خلبان و دستیارانش کنترل‌ها رو بلدن من مجبور نیستم که برم داخل کابین با اون دکمه‌ها و کنترل‌ها سر و کله بزنم چون خلبان خودش همه اون دکمه‌ها رو می‌شناسه و طرز کار همه اونها رو میدونه. وقتی کتاب مقدس در مورد انتخاب به ما میگه اینکه خدا یعقوب رو انتخاب کرد نه ایسو رو خدا اسرائیل رو انتخاب کرد نه ادوم و بقیه ملت ها رو و خدا یکم در کابین خلبانش رو باز میذاره تا ما از لای در نگاه کنیم خدا انتظار نداره که ما همه اینها رو درک کنیم خدا فقط اجازه میده که ما از لای در نگاه کنیم که کاری که خدا میخواد بکنه چیه خدا از ما انتظار داره کارهایی که آشکار میکنه رو درک کنیم در تصنیه 29, -29 به ما اینطور میگه چیزهای مخفی از آن یهو و خدای ماست و اما چیزهای مکشوف تا به عبد از آن ما و فرزندان ما هست تا جمیع کلمات این شریعت را به عمل آوریم خدا در کتاب مقدس به ما دستور میده دستورات خدا نه پیچیده است و نه مبهم اونها خیلی واضح هن. کارهای خدا خیلی شفاف به ما نشان داده میشن انتظار نداشته باشید که از کارهای سری سر در بیارید حالا بریم به قسمت آخر این قسمت تعلیماتی فوقالعاده. باب 11 آیه 33 و ما هم با پولس این ستایش عظیم درباره دانایی مطلق خداوند رو اقرار کنیم مشاهده کنید که پولس چگونه این تمجید رو در آیه 36 انجام میده پولس میگه زیرا همه چیز از او به واسطه او و برای اوست پس دوباره این کلمه را دیدیم پس چون ای برادران در پرتو رحمتهای خداوند از شما استدعا میکنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس پسندیده خدا به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است و دیگر هم همشکل این اصر مشوید بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید آنگاه قادر به تشخیص خواست خدا خواهید بود خواست نیکو پسندیده و کامل او در پایان قسمت تعلیماتی پولس سه چیز درباره خدا به ما میگه به ما میگه که خدا سرچشمه ی همه چیز هاست این یک مشاهده عمیق زیرا همه چیز از اوست پولس غالبا از این عبارت استفاده میکنه همه چیز به هر حال با اینکه پولس غالبا از این عبارت استفاده میکنه ولی هیچگاه به صورت سطحی از اون استفاده نمیکنه وقتی در باب 8 آیه 28 پولس میگه میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارند و بر طبق اراده او فراخوانده خوانده شده اند همه ی چیزها با هم برای خیریت در کار است روح به پولس الهام داده و او هم میدونه که روح القدس چی میگه تا به حال در زندگی وارد شرایط بحرانی مثل مریم و مارتا زمانی که برادرشون را از دست داده بودن شدید؟ و به این دو کلمه در رومیان 8-28 مراجعه کردید؟ میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شدند همه چیزها با هم برای خیریت در کار است تا به حال بعد از اینکه این دو کلمه را دیدین از که پولس واقعا همه چیزها منظورم اینه که حتی این یکی و پولس به شما بگه بله همه چیزها اگه شما خدا رو دوست دارید و بر طبق اراده او کار می کنید خدا میتونه که تمام چیزها رو جوری بچینه که با هم بر طبق یک الگو با هم تطبیق پیدا کنن و برای خیریت شما کار کنن پولس دوباره از این عبارت استفاده می کنه وقتی میگه زیرا همه چیز از او و بعد میگه و به واسطه او یعنی اینکه خدا قدرت نهفته در پشت همه چیز هاست این مشاهده عمیقی هست بعد پولس میگه و برای اوست پولس درباره شکوه و عظمت خدا در دلایل همه چیزها صحبت میکنه حالا میتونید باور کنید پولس از باب یک آیه 17 شروع کرد و وارد عظمت الهام این بحث در باب 11 آیه 36 شد و بعد گفت گوش کنید خدا سرچشمه تمام چیزهاست خدا قدرت نهفته پشت تمام چیزهاست و خدا دلیل هر چیزی هست. پس چون این یک عمل هوشمندانه پرستش برای شما هست تا خودتون رو مثل قربانی زنده به چنین خدایی تقدیم کنید این بزرگترین پس چون مطرح شده در نامه پولس رسول به رومیانه پس ای برادران در پرتو رحمت‌های خدا از شما استدعا می‌کنم که بدن‌های خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا به او تقدیم کنید به خاطر اینکه خدا سرچشمه همه چیز است او قدرت نهفته در پشت هر چیزیه و شکوه خدا دلیل هر چیزیه در اینجا یه راه تفسیر دیگه از آیات باب دوازده وجود داره که بخش عملی از رساله مهم و امیق او به ایمانداران رومیان رو به ما نشون میده بنابراین برادران با توجه به این رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداس به او تقدیم کنید عبادت روحانی و معقول شما همین هست. هم این جهان نشوید بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچرا که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید وقتی سنمون بالا میره های ما تغییر میکنن زمانی که جوان هستیم انرژی بسیاری داریم. شما برای تمامی چیزها در جوانی انرژی می سوزونی. اما زمانی که سنتون بالا میره یا وقتی که مریض میشید انرژی چندانی برای طلف کردن ندارید شما دعا می کنید که چگونه و در چه راهی انرژیتون رو استفاده کنید ولی انرژی چندانی ندارید. شبانی رو میشناختم که به دلیل مریضی و ناتوانی شدید دچار خستگی مزمن بود او به این نتیجه رسید و ما باید قبولش می من نمی خوام انرژیم رو روی پروژهای سرمایه گذاری کنم. مگر اینکه بتونم بگم خدا سرچشمه این پروژه هست. خدا قدرت مخفی پشت اون پروژه است و جلال خداوند دلیل انجام این پروژه است. این دلیلیه که ما باید روی آو هامون تمرکز کنیم. مگر اینکه بتونم بگم که خدا قدرت و انرژی در پس این کار خواهد بود. من نمیخوام که وقت خودم رو برای این کار بذارم. چون من هیچ توان و قدرتی از جانب خودم ندارم مگر اینکه بتونم بگم جلال او هدف این کاره من نمیخوام خودم رو پای این کار بذارم چون زندگی واسه من ارزشمنده این قضیه فقط برای افراد پیر و مریض صدق نمیکنه برای تمام ما که میخوایم شاگرد عیسی مسیح باشیم صدق میکنه این چیزیه که پولس میگه او این رو اینطور بیان میکنه شما باید بدنهای خودتون رو همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا به او تقدیم کنید. بعد باید دعا کنید که خدا سرچشمه و دلیل تمام چیزهایی بشه که شما میخواید خودتون رو وقت به اونها کنید. فکر میکنید چنین چیزی به عنوان اراده خدا برای زندگی شما وجود داره؟ آیا باور دارید که خدا شخصا برای شما خیلی اهمیت قائله؟ آیا ایمان دارید که خدا برای زندگی شما نخشهی داره؟ بر طبق کتاب مقدس، خدا شخصا برای شما خیلی اهمیت قائله. کتاب مقدس به ما میگه هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید خدا یک شخصه. در عهد عتیق، خداوند شبان ماست. در عهد جدید، خداوند پدر ماست. وقتی ما دعا میکنیم، ما ابا پدر رو صدا میکنیم که معنیش میشه بابای من. براساس اساس عهد جدید، ما رابطه بسیار شخصی با خدا داریم. کتاب مقدس میگه عیسی حساب تمام موهای سر شما رو داره. داوود در یکی از مزامیر مورد علاقه من مزمور 139 اینطور میگه. خدا تمام روزهای زندگی ما رو قبل از اینکه به دنیا بیاییم برنامه ریزی کرده. اینو باور میکنید؟ پولس رسول این رو باور داشت. او زمانی که وارد قسمت کاربردی این رساله العاده میشه با الهام روح القدس به ما میگه چطور میتونیم این تجربه که نقشه خدا برای زندگی ما مفیده رو داشته باشید. همیشه به یاد داشته باشید که نقشه خدا برای زندگی ما بسیار سودمنده. گفتن اینکه خدا وحشتناکه دروغ بزرگیه. خیلی از مردم فکر کنند که باید خودشون رو تسلیم خدا بکنند و میگن خدایا من میخوام توی باشگاه مسیحیان اچ اچ اچ باشم. یعنی هر چیزی، هر جایی و هر وقتی اونا سرانجام به بدترین جایی که میتونم تصور کنن میرسن. من سالها به این موضوع باور داشتم. بدترین جایی که میتونم تصور کنم جنگله. برای سالها به این موضوع باور داشتم که اگه من همچین ارتباطی با خدا برقرار کنم، خودم رو توی جنگل پیدا خواهم کرد. این دروغ بزرگ رو باور نکنید. کتاب مقدس به ما میگه که خواست خدا بسیار شیرینه. در واقع بر اساس کتاب مقدس خدا است. او اونیکو هست. چی از این بالاتره؟ کتاب مقدس با ما در مورد اراده خوب و عالی خدا صحبت می کنه که تنها چیزی که باعث میشه خدا در هر جایی که شما هستید شما رو قبول کنه. او به شما استعداد و عطایایی داده. زمانی که شما ای برای زندگیتون دارین و اون رو به خدا میگین، خدا به اون نگاه می کنه و در اون زمان خدا نگاهی به عطایا و استعدادهاتون میندازه و بعضی وقتا میگه غیر قابل پذیرشه من نمیتونم این نقشه رو برای تو قبول کنم ولی یه چیزی هم هست که خواست خدا هست و برای زندگی شما خوبه عالیه و پذیرفته میشه چه چیزی برای زندگی شما میتونه از اراده خداوند مهمتر باشه در این قسمت پولس در اینکه چگونه میتونید خاست خدا رو توی زندگیتون داشته باشید صحبت میکنه او به ما این سه مرحله رو میده اول اینکه روی خدا تمرکز کنید این چیزی که پولوس معنیش رو در ستایش انتهای باب 11 انجام داده. این رو درک کنید که خدا سرچشمه همه چیزه. قدرت نهفته پشت هر چیز و دلیل هر کاری. بعد از اون خودتون رو به خدا بسپارید و بعد میتونید بر روی خدا تمرکز کنید. دوم اینکه نسبت به خدا متحد باشید. شما باید خودتون رو متعهد کنید که خواست شما مطابق خواست خدا باشه. اگر میخواهید ارادتون همسو با اراده خدا بشه، باید نسبت به اراده خدا تعهد داشته باشید. یکی از سوالات متداولی که بیشتر از بقیه سوالات از شبانان میپرسن اینه که برادر، من چطوری میتونم بفهمم که خاست خدا برای زندگی من چیه؟ من سالها بسیار تلاش کردم که به این سوال جواب بدم و آخر به این نتیجه رسیدم. بزرگترین مشکل در شناخت خاست خدا نیست. بلکه در شناخت خواست شماست عیسی در یوحنا باب 7 هفت آیه 17 قاعده ای رو به ما میده و میگه اگر کسی به راستی بخواهد اراده او را به عمل آورد درخواهد یافت که آیا این تعالیم از خداست یا من از خود میگویم من به این از ایمان دارم اگه خدا بدونه که اون چیزی که درون قلب شما با تعهد به او همراهه و کاری که انجام میشه اراده او هست خدا به شما اراده خودش رو نشون خواهد داد. اگه دلایلی وجود داره که کسانی اراده خدا رو به جا نیاورن به خاطر زندگی خودشونه، به خاطر اینکه اگه خدا هم براشون از آسمان نشانه بفرسته، باز هم کار خودشون رو میکنن. حتی اگه خدا ارادهش رو به رنگ صورتی یا سبز روی ابرا بنویسه، اونا کار خودشون رو میکنن و خدا هم اینو میدونه. پس خدا برای چی ارادهش رو به این افراد نشون بده در حالی که اونها باز هم کار خودشونو خواهند کرد پس گامهای شناخت اراده خدا اینها هستند اگه میخوان که تجربه خاست خدا رو برای زندگی بهتر و عالی در مورد پذیرش وی داشته باشین بر خدا تمرکز کنین و به خدا متعهد باشین سومین گام گامی منفعل هست. پولس میگه توسط خدا تبدیل شوید این نتیجه استدلال پولس در کتاب رومیانه. بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید وقتی عیسی گفت باید دوباره متولد بشی عیسی این رو به ما میگه ما مجبوریم که تجربه منفعل بودن رو داشته باشیم و خداوند هم در این مرحله فعاله حضور عیسی هم در این تجربه الزامیه وقتی شما به صورت فیزیکی به دنیا میاید، آیا شما کاری از خودتون انجام میدید تا اون اتفاق بیفته چه چیزی باعث میشه که شما تولد رو بیاموزید و تمام این اتفاقاتی که برای شما رخ میدن رو انجام بدید. نه به دنیا آمدن شما امری انفعالی بوده، تولد چیزی بوده که برای شما اتفاق افتاده. این برای تولد روحانی هم صدق می میکنه وقتی پولس می میگه به روی خدا متمرکز بشید ما رو به چالش میکشه که در نقشی فعال باشید. به خاص و اراده خود به خدا متعهد باشید. متحد بودن به خدا باید، مطالبه و انتخاب شما باشه اینجا جایی که سهم خدا بسیار مهم و حیاتیه بلکه با نوع شدن ذهن خود دگرگون شوید همونطور که میبینید راه خدا راه شما نیست و افکار خدا افکار شما نیست به اندازه که بین زمین تا آسمون فاصله هست تفاوت اساسی بین راهی که شما فکر میکنید و عمل میکنید با راهی که خدا فکر میکنه و عمل میکنه وجود داره همونطور که اشعیا گفته حالا اگه شما تلاش میکنید که بفهمید خواست خدا چیه چطوری خدا بفهمه که تمرکز شما کجاست شما باید در ذهنتون اون رو تجربه کنید شما مجبورید این تجربه رو داشته باشید بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید تبدیل شما از طریق نو شدن ذهنتون ممکن میشه پس از اون شما میتونید ثابت کنید که خدا در مورد شما چطور فکر میکنه و خدا چگونه از طریق شما عمل میکنه زمانی که توسط خدا تبدیل شدید در تجربه میتونید اراده عالی قابل پذیرش و کامل خدا برای خودتون رو ثابت کنید پس بر خدا تمرکز کنید وقتی پولس مینویسه به خدا تعهد داشته باشید و توسط خدا تبدیل بشید همچنین مینویسه با خدا هم شکل شوید پولس عیناً مینویسه همشکل این جهان نشوید بیشتر ما استعداد و تمایلی درون خودمون داریم نوع تمایل به گوسفند گم شده بودن. تمایل نداشتن به اطاعت کردن. به ویژه افراد جوان که سنتگوریزان بزرگی هستند. حتی اگر تنها به دانشجویان دانشکده ها لقب سنتگوریز بدیم مردم بسیاری در سراسر جهان سنتگوریز محسوب میشن در دوران تحصیل زمانی که دانش آموز دبیدستان بودم منم مثل بقیه مجبور بودم لباس فرم بپوشم. جاکت چرم و شلوار جین آبی چیزی که همه میپوشیدند و من هم خودم را با اونها تطبیق داده بودم اما میلی درون ما وجود داره و اون تمایل به متفاوت بودنه. چون اگر قصد داریم طبق اراده خدا زندگی کنیم متفاوت خواهیم بود وقتی تولد تازه پیدا می کنیم، خدا کشش و خوی گمشدگی رو در همه ما تقدیس میکنه. خدا در کلامش به ما میگه مثل کس دیگه ای نباشید اجازه ندید که دنیا به شما فشار بیاره تا در قالب اون شکل بگیرید فشار همیشه هست دنیا تلاش میکنه که ما رو به شکل خودش در بیاره شکل بگیرید اما در قالب عیسی مسیح تا شما را با خواست خدا برای زندگیتون همگام کنه و باعث بشه همشکل این جهان و ارزشهای دنیوی مردمی که شما رو احاطه کردن نباشید پولس این نکته کاربوردی رو با آموزه خیلی مهم که مختصرا اون رو نقل قول میکنم ادامه میده. هم شکل خدا شوید. در باب دوازده رومیان پولس با صحبت درباره عطایای روح ادامه میده و میگه روح القدس از طریق دادن عطایا به مردم کار میکنه. در آینده و با رسیدن به نامه پولس به قرنتیان مخصوصا باب دوازدهم در این مورد بیشتر خواهیم خوند. خدا میخواد به واسطه یه دادن عطایای روحانی به فرزندانش از طریق اونها کار کنه این عطایا باعث میشه های افراد برای خدمات روحانیشون افسایش پیدا کنه در بخش کاربردی کتاب رومیان پولس ما رو تشویق میکنه که در خدا تمرکز کنیم به خدا متعهد باشیم توسط خدا تبدیل بشیم و بر خدا منطبق بشیم و توسط خدا تأیید بشیم پولس به ما میگه به دنبال عطایایی باشید که خدا به شما داده عطایایی که تمام آنچه خدا از شما میخواد انجام بدید و اراده او رو در زندگیتون نشون میده نام یه پولس به رومیان یکی از شگفتانگیزترین رساله ها همونطور که در مطالعه رومیان دیدیم باید برای آموزش خدمت به روح القدس دعا کنید وقتی که شما از خداوند درخواست میکنید تا روح القدس رو به شما بده کسی که میتونه به شما آموزش بده که پولوس در این نامه چه گفته، باید با این نامه به مکانی خلوت برید. به آیه اول باب اول برید و با تعمق کل کتاب رو بخونید تا زمانی که تموم کنید. و نیز تلاش کنید که مفهوم این پیام عمیق الهی رو پیدا کنید. بیشک درخواهید یافت که این نامه شاهکار عهد جدیده و بر طبق نظر خیلی ها یک شاهکار الهیاتی در کل کتاب مقدس محسوب میشه. وقت ما رو به پایان هست و میخوایم به این درس خاتمه بدیم، بخش آخر کتاب رومیان رو در زندگی خودتون به کار ببرید. جایی که پولوس ما رو تشویق میکنه که در خدا تمرکز کنیم، به خدا متعهد باشیم، توسط خدا تبدیل بشیم و بر خدا منطبق بشیم و توسط خدا تأیید بشیم. من مطمئنم که شما می‌تونید این تجربه رو توی زندگیتون داشته باشید. عزیزان خود چیزهای فوق‌العاده‌ای رو برای زندگی شما میخواد. کتاب رومیان فیض عظیم خدا رو بیان میکنه که ما رو از حفره ناامیدی بالا میبره و زندگی ما میتونه بر اساس اون بر پسرش عیسی مسیح تبدیل بشه و منطبق بشه. سرمشقا و عبرتهای زیادی هستن که ما در هفته های آینده یاد خواهیم گرفت. دوستان پس ترتیبی بدید که مطمئن بشید که در جلسه ی آینده دانشکده کوچک کتاب مقدس با ما همراه باشید تا برنامه بعدی قدرت روح القدس آرامش و سلامتی اون بر شما باشه تا شما شاهدی جسور برای محبت مسیح باشید